اگه حواس پرتی نماز را باطل میکنه باطل نمیکنه در این صورت اول کے این است که برای اینکه ما نماز بیخانی در اول نماز اینکه که نیت میکنیم من چهار رکعت نماز عشاء رو میخونم اینجا ضروری است فرض کنید اگه این راه هم ندانیم ندانی نماز باطل است چون نیت درست نیست حتی عقل اول نماز اینقدر باید بدانید که ما چرا نماز میخوانم و چیکار میکنم و اینگاه نماز اگر نیت کرد که ما چهار نماز فرض میخوانم نماز شروکار دے اس صورت کہ این نمازش درست ہے۔ بعد داخل نماز ہواس میرے بیروں یا داخل میرے بیروں یا داخل بہتر یہ ہے کہ چکار کرے اول در کل راستے ہواس بیروں نماز آون داخل نماز نماز و باطل نہیں کیے۔ نماز و باطل نہیں کیے۔ ہمرا سعی کریں کہ باطل نہیں کیے۔ اول ان جواب دیں چرا باطل نہیں کیے۔ چون جای جای نبی کریم صلی الله علیه سر نماز بوده فردو ما سر نمازم میشم بچا دارن گری میکنم من زو نماز میخورم در ما دوران زو بیره خونه حق بچا گری میکنه پس حواس نبی کری بیرون از اگر نبی کری مرا بیرو و نماز باطل نشه نیجا و در این داخل سی بخاری میگه حضرت عمر فرمای که جاهز و جيش فی صلاتی من در نماز کی میستان را گئے اپ درست میکنم حالا این دوری دستبندی میکنم اما این جایز است چرا؟ چو بسر دینی هستی؟ اگر در نماز بسر دینی وشگور شو نماز باطن نمیشه اما مثل بعدی نبی کسر نماز بودن در غزوه بدر در منطقه بسر نماز بودن دو نفر از جاسوسای از افراد دشگن گرفتند. گرفتن صحابه اکرام محقل انها زدن چند نفری شما اونها می که ما نمی اون اونها رو چند نفری ای بفتن این قاده رو وقت رحا و تن می ذهب بعد را بارد چند افریم بغتا مار نبی دانید توان می بعد درول می بفتا رحا می بعد ما نبی دونید توان نبی کری سلام داد گفت بابا وقتی را بگش و می, می زنید وقت درول می دادش و رحا می در انجا هم نبی کریم خواست بیرون بیروه باستان متوجه شد و نماز باطل نشد پس نماز باطل نمی شد بعد علاقی داستان تاخر بگن کیونک اینجا نبی کی گیا اینجا. گفت که اینا نمیدونن، اینها نمیدونن، این نمی بعض اونها پرستید که خوب روی چند تا شدر می کشید شما گفت یک روز نهتا تا و یک روز ده تا گفت پس اینها بین نوستاد تا هزان نفرند برید ببین صورت بودن. این میگن دانش این میگن علم فورم با یک چیز خیلی ما و من ذریب اونا رو دیگه فهمند که اینا ها این که حالا برید پس اگر در نماز گاه گاه حواس را بیرون داخل اومد نماز باطل نمیشه اما راه شیعه ی نماز حواس را بیرون نره چیکار بکنیم تنها راه نجات توجه هست اگر بعد مواذی موعظه موعظه نماز موعظه نگیره چون با موعظی نیستیم توجه نمیکنه میره اگر وقتی نماز خونید با توجه با موعظه و بخانین حواس انسان اگر به بر, بر, بر میگرده اما از اوات اللہ و اکبر گفتیم اصلاح موازو نماز نیستیم توجن داریم حالا میریم می یاد کل دستانار میگردیم یاد آخر نویزون چار رکات خوندیم حالا تجستان بکنیم یا نکنیم درست نه همین جور آخر نگیم با دستی نگاه بکنیم بالا پایی نگاه کنیم حالا چکار بکنیم وارا پریشان پریشان بابا اوات متوجیه نماز باش موازدات و توجه